بسم الله الرحمن الرحیم این که گفتمی شود در طول روز ساعاتی را فکر کنید ساعات لازم نی پندیقم نمیتونی فکر کنی بلی پندیق بکنی کافیس زیادم بکنی هرز میشه به درده میخونه دیگه که که کافیس بلی امید مرگ دیگه بلی امید به زندگی طولانی باعث باشه دم از خدا قافل بشه بری دنبالی چیزایی که نباید بری ولی باور کنه که من مردن یا مثل مرده های خود تسپاشی چه همین کنه بله این دفع کنه در آفاق و آفاق نازمی دیگه آفاق مالی کسانیست که خدار قبول ندارن ببین اینا ها مخلوقات خدا ما به هم درد یا آفاق گذشتین خدا فیلن خدار قبول داریم مشکل ما در گوش کردن به حرف خداست این مشکلی بود با فکری مرگ و این چیزا درست کنیم بلی. خودمی که مرگ رو به خودش رو کنه غالبا اثرش اینیست که حواظ جمع زم میکنه گوش برف رو کدا میده خود چه آماده مردن رو به مرگ میکنه اما اگر بفکر مرگ نباشه بگه مرگ حقه اما برای دیگران شیط مسلط میشه کارایی که نباید انجام بودن انجام میده برده به یاد مرگ قبرسون رفزن رفزن بود؟ گاهی چرا ولی آدم بین قبرسون نه تو لای اون زنا مر مشکولی بخاری دیگه نموشه ولی نمیده را فکر کنه